راحتی کاروی موم از دستیونوس کاروی کیف کاروی و هدفشون هم اشیا راحت می‌روم، هدفشون و مردمی می‌نن آموتوری آثار از او. وقتی نمی‌دانم در مورد نمواریونوس می‌گفتن که تومکونان که داشت نکردن مستعترش نمی‌کشه. هکیلی بومن بود و پیر مجلی گفتن که میگونت رفته میگون ما نبیدونیم کجا چه کجا کم همه چون دست جمع از شهر بریم میگون <تصفيق> <تصفيق> ننا و مردا و بچه ها بچه ها رو از مادرها جدا کنید حتی با احشابتون بگیدیم برده ها رو از بسمه بس ها جدا کنید و این طوری یک پاچه به درگاه خدا اضافه ای کنید این ها به همین ریع اصرفشند یا آقا یک پاچه درچه و چیم بند شد یک تنگی همگاه هایی خدا آزار از آقا رو بردار خواب اگه بکنم خدا یا خدا این جمعی که ما امروزی جا جمع شدیم زن و بردی و جواب دیدم حتی بردید مخصرات بچه بردی های خوچه بشوند どっちもよく書き入で مراشر فریشانی چه حاجم که مرحال فریشانه و امگواهی خدا یاد که بر رفت تو دارم خدا من نبود ببینم دیگر میشودی بدون لطف ندارم دیگر خداي من نهاده تربخاک t e n t a the n e e n a h e h e e e next n y the n a y d e n e n y the n a y d e n t h e n e e n e x e h a y t y به چشمی لطفت خروب شو اگر ترزد خطایم اجتباه من آن یارب به درگاه که دارم バスで悟り。